رمبنا آلمین الله صلی رسول الله و آله قیبین و و, و دائمت و اللهم فقنا و در رحمت, رحمت رحم. که بخص راجع به خبر به در كتب اهل سنت بلکه كتب خود ما امثال معالم و اینجور ها اعصار فراوانی در اینجا هست، لكنشون معروف میشه به جهات دیگری که بیشتر الان در به اصطلاح مقدمات رجالیات و درایات حدیث دسته‌بندی میشه، فعلا یه بار دیگه وارزون نمی‌شیم، نهایتاً بخشی که اینجا شد در باره اصل حجیت خبر بودن این مقدار بحثی که تنیجا انجام گرفت راجع به اصل حکیه از بود و معروفه که این مسئله که از مسائل بسیار اساسی در دنیای اسلام و چه در پیش ما در بین شیعه که خب واقعا جزامت شدیدی داشته و چند بین اهل سنت هم در اون مقدار حکیت روایات اختلاف خیلی زیاد. یعنی این بحثی رو که من عرض کردم، مثل مقداری که ما روایت داریم با اون مقداری که اصطلاح قصد های ررجی داریم فاصل شد کمه مثلا 20 درصد کل میراث رژالوی ما به دروار میکن. این مشکل اهل س نه هم هست نبرا اون مشا درناست. پس مثلا بخاری مجموع احادیثی در بخاری تو چه هزار خورده ایست و این۴ در کل در باقع، رضا جامعه هست یعنی در کل ابواب از اقاعد و اخلاق و تاریخ و تفسیر و تاریخ قضاوات پیغمبر ملاغم و فتن و بخواهی این کل ابواب در کل ابواب چهارزار و خب قطعا اونجا هم همین مشتر داره یعنی هم همین مشتر و که این مقدار قطعا وافی به حدیث اونها نیست و اصولاً این مشهل است کردم مثلا احمد ابن هنبل گفتن یک میلیون و هزار حدیث دیده بوده که این تقریباً بیستانه هزار این مستنده ایشون زیر سی هزار حدیثه یعنی این مشکل اینکه این خیلی زیاده و تکرار هم زیاد داره خیلی زیاد با تمام این حرف ها من مثلا سی هزار تا به نسبت یک میلیون و همسده حساب میکنیم نسبت خیلی زیاد. تا اونجایی که من تو ذهنم هست توی فرق اسلامی تا اونجایی که من الان میتونم بگم کسی که نسخه حدیثش عوض نشده همین اسمایی هست با هرها برسده چون این در دوره هزار ست سال ربکی کتاب دعای نوشته شده ظاهرا تا روزگار ما نه شده نزیه ها همون کتاب دعای نه نه مسادر دیگری دارن نه صحبت دیگری شده نه ارزیابی حدیثی دارن نه مواحص حدیثی دارن یه چیزی در عوده هزار سال عوض نشده هرچی اون در زمان مثل دعایی شده تا الان تا این لحظه اونا دنبال همون هستن بقیه فرق اسلامی تا اونجایی که من دیدم البته فرق خوارج رو از کتاباشون دیدم بیشتر همون روابط اهل سنت رو دارن سعی بخاری سعی مسلم هم احضارت بیست اونا دارن حس بکردم خیلی حدیث مستقل خودشون فکر دارن در سؤالاتشون فتاوی خاصه خودشون اما حدیث رو حس نکردن چیز خاصی بینشون باشه همون مقدار اختلافی که در میان اهل سنت هست یک صورت نپخته و به یک صورت زعیفی در فن سوال که من گفتم منعکس شده در زیدی اختلاف هست چون اونا مدعه مثلا زیدی هایی که تقریبا الان مشه زیدی زیدی نیست مثل شوکانی اونا هم به حدیث اهل سنت مراجعه کردن ایشون نمی‌تون خود رواياته خودش هم احضار زیاد داره و مثلا ابن عوده که نمیارش در صدها هزار حدیث مذاکره کنه ببینم بار حساس تا شطور یک کتاب فرقی نمی‌شونه دیگه در کلته که هیچ چه احدی هم استحصاف نکرد به خاطر کسرت اون روایتش و, و کثرت داریم بزرگ بودن این کتاب الای حال دارن روایتات متعدد دارن و مباحث داره. دارم انصافه اما من و مجموع در میان فرقه این چند فرقه شیعه که ما الان داریم میدار اشتار از همشون منظمتر و به صراحه. علمی علمیترش هم امامی اصناعشویه هستم که اینم هم یعنی از کردیم دیگه تکرار دیگه بکنیم راجع به بحث حجیت بعد از این بحث حجت معلومه استاد وارد بحث و اصول عملیه شدن از همین کتاب مسوا صفحه 285 ایشون قبل از اینکه وارد بحث بشن چند تا امر رو بیان فرمودن که ما قاعده این مطلب مقصد اول ایشون رو سعی میکنیم بخونیم عین تقریبا عین عبارتش رو و مناقشات جزئی هست با ایشان خب همونجا دیدیم یه مناقشه کلی هست بحث کبروی اون بعد از نهایت بحث هست امر اولی که ایشون در اینجا آوردن که این امر را احس کردیم سال قدم صحبت کردیم قبل از اده از مباحث تکرار شده در کلمات و استاد اونم زابطه بحث اصولی که آیا این بحثی که ما به اسم اصول عملیه داریم آیا در بحث اصولی وارد میشه یا نمیشه لذا وارد زابطه بحث اصولی و تقسیم بردی و اصول به این که ما اصول عملیه رو در کجا قرار بگیم امر اول قد ذکر ما اول بحث الفاظ مسئله اصولیه این رو ما ارس کردیم چند بار پردنه پر بحث الفاظ تو جار متعدد نفقط ایشون مرموم ناینی هم دارن تو اول قطع هم دارن تو اول الفاظ هم دارن مسئله اصولیه هی ما که انتقه نتیجه توها فی طریق استنبات حکم کلی فرقی اون سابقا هم توضیح دادم نظر همین اول قط بود من توضیحاتش ارس کردم بله این صفحه اول قط که آیا اینجا ایشون بله ان المسعد الاسوریه ما تکن نتیجه توالا تبدیل تمامیه موجبتن در قطع به وزیفت الفعلیه وقت اونجا باز متعرس شدیم چند جا این بحث رو ما متعرض شدیم ایشون مرگ آقای خویه هم متعرض شدن ناینی هم متعرض شده خود مرموم شیخ انساری تو اول و به خبر واحد متعرض شدن هده از علما در مناسبت های متعددی متعرض بحث اصولی شدن اگر یاد آقایین باشه من تو ذهنم هست که گفت این بحث رو اگر یاد آقایین باشه از که این تعریف رو که ایشون در مسئله اصولی دارن همون تعریف است که مرموم ناینی داره اما ما نمیدونم هم اونجا هم همونجا خیلی تعبیر مرموم استاد دقیق نیست عین تعبیر ناینی نیست این حالا سابقا هم از کرده چون مرموم های بجنودی هم که استاد با بودن ایشون هم همین تربیری داشتن تعبیر مرموم ناینی و تعبیر ناینی در حقیقت اینطوریست، طوریست از ایشون نشه از مسئلت اصولیه مایوم که ان تغه نتیجه تها فی تریل اصطباط الهب این یمکن به لحاظی که اختلافی است براشون و زمان و زمان نه اگر حدجد ها تغه یاگه اگر حدجد ها نوچی جوی بایست ما یمکن انتگه نتیجه تها فی تریل اصطباط الهب ملکلیی الفری از که در کلمات معروفانیه ولی شما مرا استاد ما عالی بودندی تکرارشله اینطور ما تغه نتیجه کبرا، این تحبیر درست نیباردن صحیحش این طوره مسئله رسولی، مسئله که نتیجهش کبرای قیاسی باقیه میشه خوب دقت کنیم کبرای قیاسی باقیه میشه که از او اسپنتاج یا حکم شرعی فرعی کنی بشین ایشون جایی دیگه که سابقه مادن درست نیباردن اینجا هم درست نیباردن حالا شاید نظر واقع باید خودشون اما اون مص... و همون هم درسته اگر اصطلاح درسته همونه اصطلاح مرحوم ناینه قدس الله نفسه این نظری بود که مرحوم های ناینی داشت که باید کبرا قرار بگیره دقش بکنی کبرا یک قیاسی که ند... استنتاج حکم شرعی در مقابل حکم مثلا فیزیکیشی یا یه طبیعی نجومی و فرعی هم باشه در مقابل حکم اصولی مثل اصول عقاید و کلی باشه این رو معنون هایی دارد دارم کلی باشه در مقابل قاعده فقهیه یعنی فرق مسئله اصولی با قاعده فقهی اینه قاعده فقهی هم کبرا میگیره میگره قاعده فقهی مسئله ای است که نتیجه اش کبرا قرار میگیره، لكن استنتاج یک حکم شرعی فرعی جزئی. فرق این فرق کلی هم که جون آورده، آیا بر کلمه کلی رو آورده. درسته. این کلی در مقابل قاعده فقیه است. اگر کبرای قیاس قرار میگیره که حکم شرعی فرعی جزئی در بیاد، این چه قاعده فقیه؟ مثل قاعده من ملک، من ملک شیعه ملک الاقرار ده هر کسی که مالک و سیطره برای یک چیزی داره اقرارش هم در اون نافذه مثل من عبا میگم پاکه یا نجسه چون من مالک ابا هستم اقرار من درباره ابا این قاعده اگر ثابت شد من که میگم این پاکه این پاکه نتیجهش حکم فرعی شرعی هست لیکن جزیه یعنی تهارت ابا فرقش با اصولی ولذا مرموم نایمی معتقدم که اگر بگیم استثاب در احکام کلیه حجته این میشه مثل اصولی مثلا بگیم با مثال آبی که متغیر بود به نجاست زالت تغیر منقبر نقصه این حکم به نجاستش میکنه استثابه یا زنی که مثلا یه رمو کذا به لحاظ ایام حیز بعد از انقطاع ادن و قبل الاختصاد حکم به حرمت وقت میکنه استثابه چون نتیجهش حکم فرعی کلی این میشه مسئله اصولی همین استصحاب در موظاعات خارجی قاعده فقهی است هم همین نمی استصحاب. دزا استصحاب رو به یک لحاظ مسئله اصولی میدونن به یک لحاظ قاعده فقهی میذارن روچانه شد. مثلا این دوازه سورا سابقا پاک بود الان پاکه. اگر نتیجه که گرفتیم جزئی بود این اسمش میشه قاعده فقهی و من توضیحات رو ارائه کردم. در میان اهل سنت قواعد فقهی از بحثی که رواج پیدا کرد در خاصه قرنهای 8 با عنوان بیشتر علی اشباه و نظائر پیدا شد ما هم داریم دایی مرحوم پدر مرحوم عقیلدایی فنه الاشواح و یحیی و نظر اون چیز دیگه‌ای مرادشه ما قواعد فقهی ما تقریبا از حدود قرنه 8 هم 9 حاضر نکات باشه مردوم فی ازول مقدار قواعد تدریجا وارد فقه شد یعنی وارد فقه ما شد مباحثی که به عنوان قواعد فقهی هست. و قواعد فقهی رو در اصول نیوردن مثل قاعده طهارت خالص در اشیاء خارجی در شواهد حکم مثل قاعده طهارت مثل خود استصحاب مثلا کسانی که از که مثلا خویش خود بنده قائل به حجت استصحاب در شواهد حکم کلیه نیستی قاهنهای استثناب میشه قاعده فکری، چون در اصول که جاری نمیشه در مسائل استنباط جاری نمیشه میخوره به اون خارجی میشه قاعده فکری. قاعده اقرار قاعده است مثلا قرعه قاعده قرعه برای اکتشاف احکام نیست مثلا دو سال کتاب یکیش مال کی دیگه مثلا اگه گفتیم برگرده به قرعه قرعه بزنیم مثلا این کتاب مال اون نواسیه اون گوش مثال گوش و تعتیق که در قاعده بنای علمای ما این نیست که نه حقا شد از سیرون تابوس در برزی از موارد قاعده قرآه که خیلی خوب خیلی عجیبه و بنای علمای ما به طور طبیعی قاعده قرآه در موضوعات خارجی تا سابقا هم اشاره کرده ما دادن نه به اشاره مرموم سابجواه هم معتقد همه هم در شبهات خارجیه اصحاب به قاعده قرآه مراجعه نکردند به ایشان، جایی ما به قاعده قره رجوع میکنیم که اجماعی باشه و این توضیحاتش هم ما در محل خودش فعلا ارز نیست. پس بنابراین این چیزی که مرموم استاد اینجا فرمودن و سابقا هم فرمودن سابقا هم خودمان تو همین بستان مکان این تذکر رو دادم دو مرتبه این تذکر رو عرض میکنیم اونی که از کلمات مرموم نایل مگه ایشون نظرش همین معنا بوده در مقام تعبیر درست. مسئله ی و بنابراین روشن شد اصطلاح علماء این خیلی مسئله لکیفیه. یک مسئله مسئله فرهیز مسئله فری باز از سای هستند که متوض حکم عاوین کلیه میشن حال چه حکم تکلیفی چه حکم ویچه الخم را نرسون این مسئله ف الم را حرام صلوات ج ماه مثلا است از واجب این مسئله فریز. یک قاعده فقهی داریم اون قاعده فقهی یک برزخی است بین مسئله فقهی و اصولی قاعده فقهی هم کبرای قیاس وابر میشه که قیاسی که نتیجه حکم جزئی است حکم شرعی فرعی جزئی مثلا مثال استصحاب این لباس سابقا پاک بود این لباس پاکه این لباس پاکه این لباس, پاکه. این لباس سابقا نجس بود این لباس بوده غلط استثاب یعنی میگه شما تبقیه حالت سابقه بکنه میکن. این کبرا نتیجهش هلی تهارت یا نجاست لباسه این اسمشان قاضی فقری مسئله اصولی از یک جهت شبیه همه قاعده فقریست کبرای قیاس واقع میشه نتیجه اون مسئله کبرای قیاسه مثلا میگیم خبر صحیح آمده بر مثلا حرمت گوشت خرگوش مثلا و هر مطلبی که در خبر سعید باشه اون ثابته پس خرمت بوشت خربوش ثابته کبرای قیاس استنتاجی که قیاسی که نتیجه اون قیاس یک حکم شرعی در مقابل فیزیک و شیم عقلی، فلسفی، منطقی یک حکم فرعی در مقابل عقائه در یک حکم کلی هم باشه در مقابل جزئی که قاعده فقیه است، این یه استلاحی شده این تقسیم بنده اینطوری. البته من صابقا یه توضیحاتی ارث کردم. واقعا مثلا علمای ما و فقهای های اسلام به طور کلی خیلی زرافت ها رو به کار بردن. پرسیم این مثال اگر روایت آمد که خمر حرامه یه بحث کردن آیا فروش خمر هم باطل بیه. این رو گذاشتم توی یه بعضیشون توی اصول و بعضیشون توی که اگه مثلا خمر حرامه فروشون دو بحث دیگه این که اینجا مفرح کردم مقدمات خمر این بحث مقدمات خمر تو توی اصول گذاشتم سه آیا مقدمات تهیه خمر مثلا من برم انگورم رو به یکی کسی بفروشم که میخواد خمر رو در, رو در این رو گذاشتن تو مسائل اعانه بره که قاعده فقیز. خیلی عجیبا. حرمت خمر رو گذاشتن تو فقر. بطلان بیع خمر رو گذاشتن تو اصول که به اسم ملازم آلا خواهد آنه بوده بشار مقدمات خمر رو گذاشتن تو اصول بحث مقدمه واجه و مقدمه حرام. مقدمات ایجاد خمر برای غیر رو. این نه تو اصول گذاشتن نه تو فکر گذاشتن گذاشتن تو قواعد فقریه بحثی به نام علیه ها نه تو عدل من اشاره کردم فکر نمیشه، خیلی زرافت کاره که چه نکات فنی در ذهن اینها بوده که اینها رو یکی یکی از همدیگه جدا بکنم سابقا هم یک توضیح اعز کردم ایشون فرمودن که ان مسئله اصولی اصولیه ما یوم کرن تقه نتیجتها فی طریقه جای طریق، به جای فی تاریخ بریسیم کبرا لقیاس یستنتج و منه حکمون شرعیون فرعیون کلی عبارت استاد با اینجوری تصریح میشه به حیث و تکون و نسبت و ها الال استنباد نسبت الجز الاخیر من الالت تامه الالمعلوم تعبیر دقیق نیست همون نسبت کبرا به سغرا دیگه نسبت کبرا به نتیجه. و نا نائیزن این یک بحث به بذاته بحث اصولی که ما هم ارث کردیم و ذکر نایزا من توضیح دادم توضیح تاریخی که کرده کردم علاوه من چون به اصل ذیل کلام خود ایشون کردیم ما بعد از زمان پیغمبر اکرم از زمان صحابه بحث های فقهی در حساب شروع شد در سلسله معارف دینی که دارن ارث کرد دو تا از معارف خیلی بحث زود شروع شد یکی تفسیری که ف احسای کلامی و سفاتلواری یواش هایش برد آمد اما این دو تا بحث خیلی سریع شروع شد یکی فقر و یکی هم تفسیر به خاطر ابتلاع مرد و این از ترمه از همون سالهای مثلا 30 تا و سی سوال از زمان او سوال هست اما زیاد نیزمان این اومد خیلی زیاده سوال هم مثلا شون فتوها زیاد شد مسلمان ها با آفاق جدید رو شدن با مشکلات جدید رو برشدن. این تشکیل تشیل فرداده فر محل کلام. ازخر تا حدود سال های و ضا قرم اول ابتلاع فرره اما اونکه مثلا یه برث ها فرقی و پخته بشه از حدود سال های 5 یا۶ ه ممسوع و اینها تا حدود سال های۶ و, شست و یک صد سالی فر بود بعد آمدن یک مباحثی سی و در فر که ح کردم. در کل احوا صفه جریان داره جدا کردن با عنوان فقه اسم اینها شد اصول ما کتب اصول و از همون سال 170 سال 170 سال, سال هفتاد داریم اونی که الان به دست ما رسیده و مدون همین کتاب شافعی است علاوه استاهی که گفته شده عرض کرده مرحوم اسد حسن صدام چند تا کتاب به مثلا ابادل و تغلب از ما باقر نصرت داده شده الان اون که الان مدون دست ما رسیده به اسم اصول کتابی هست که در حدود سال 1994 1995 نوشته شده. حدود سال 1990 مال شافعی به نام اثر ساله. اینی که الان دست ما موجوده. اما بحث اصولی قبل از این شروع شده. ایشون از هم اونا گرفتن. اون اخی در بحث اصولی مطالبی که به تعبیر این چون مثلا جزء اخیر از علت تامه. مطالبی که در استنباط فقه در استنباط مسائل فقهی در طی این 140 50 سال می‌دیدن تاثیر داره و شأن اون مطالب هم کلیت باشه یعنی فقط تو یک مسئله نباشه تو 20 مسئله 30 مسئله 100 مسئله توی مسائل متعدد اینها رو جدا کردن اسمش اصول و لزوم مثلا میگن اگر مثلا با مثال شاره گفت آب از شاه بکش اگر آب پاک شد اون دل هم پاکه اون تناب هم پاکه اون لبه چاه هم شار شاره اون لبه چاه را آب بکشی اون لبه چاه هم وقتی شما آب میکشین آب نجا سوش رسیده اونم پاکه گفتن این مسئله رو ما تو اصول نیاریم این اسمه شد ملازمه ملازمه اینه اگر آب چاه پاک شد فرم فن شاره فنسیس نکرده به ملازمه دلب و تناب و اطراف چاه و اینا هم پاک میشه این ما رو توی فقه بذاشه. این شون کار آمدی توی این فرقه. یا مثلا آیه مبارکه که درباب نسا چون نسا وقتی که جلبابشون رو میگذاشتن نسا به اسلامون قوائد نسا خب مثلا دستشون دیده میشود. این بحث مطرح کردن. حالا که شاره اجازه داده که خانم به اسلام در سن پیری در اون قوائد نسا اون جلباب یا چادر یا عوادر جلباب عواس این او پارچه زخیمه مثل چادر نازمه اون را از سرش بگذاره خایین خایین دستش دیده می شود. این بحث کردن که بین کشف جواز کشف دست و جواز نظر رجل علی ملازمه هست یا نه خب بینید این توفه بودم این آرش این هم ملازمات جوزیه اسمی شد ملازمات جوزی اما ملازمه بین وجود یا مقدمه است. و این رو هرمتشه به شد ملازمات کلیه ملازمات کلیه رو اجزای کردن شد اصول ملازمات جزئیه رو دست زدن تو همون فرق روش کرد تو ماران در خیلی از مسائل فقری باید خواهد ملازمه حکم کنید لکه این ملازمات رو اصراحان جزئیه میگن دقیق فرمودید پس از نظر تاریخی هم کیفیت اندراج و اصول اینطوری شد چون یه سابقه ای سال در بود این سابقه منتحیبی این شد که بیان یک اده از با مبادی تصدیقی فقه رو اونهایی که تأثیر دارند، با یوم کرن تقدر تأثیر دارند در استنبال و سرایان دارن در مسئله واحد نه سرایان دارن در فقه رو جلاب کنن این فلسفه تاریخی تشکیل روست ولی ازا طبق این قاعده هم عرض کردیم یک نکته خیلی مهمی رو ما عرض کردیم خیلی از مسائل اصولی رو در قرم اول یا زمان صحابه به عنوان مطرح نیست اگر میخواییم اونا رو بیان بکنیم اون فرع تقیهی رو نگاه بکنیم کار روح مطلب اصولی بود اما اونا از زاویه و اصولی بردنسی نکردن مثلا پس بحث میکنم. نماز در لباس قصی درست یا نه. اصلا امیرالمومنین میتاه درست است اون که نماز باشه ادعیه درسته میگن مشهور صحابه قائلن که درست چه لباس قص چه مکان قص نتیجهش این فرق بوده قضیه کنند بعد از صد و خورده این سال که اصول تدوین شد آمدن گفتن امیرالمومنین قائل به امتناع اجتماعه اما صاحب صحابه قائل به اجتماعه ولو لباس خاصی باشه پشت سر اون میشه نماز درست نماز درست بله دیگه چون زیر بنا همین بوده چون روایت نبید. نداره نه خب چون روایت نبوده اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون اون در چه بوزه او لا یقبل الصلاه إلا من حیث امر الله خب میفهمه انسان اجتماع نهی دیگه خیلی واضحه نه. تعبیر تع... خوب دقت کنید اگر یادآوری بشه ما تو خیلی از مسائل اصولی که متعرض شدیم به عنوان اقوال صحابه متعرض این نکته شدیم که این مسئله در کلمات صحابه به تعبیر و اصولی نیامده به تعبیر فقهی آمده به اون شان شد مبادله این مسئله به تعبیر و اصولی در کلمات قدم ها نعمده نه صحابت و فقا مثلا ابو هنیفه مثلا میگفته که نماز در لباس قصدی درسته این رو ادادشه رو که یا مثلا فرسان رو مسئله کنان میسازده یکیشون میگفته این که وقتی زن بعد از انقطاع ادم حرامه اینه میزن ادادش رو کسانی که غالب استثام یه فقیه میگفته جایزه اینه میگفته در اداد فقایز که گفتن استثام جاییده میشه و لذا اگه دقت بکنید این تحبیل من دارم نیدم کسی که دار داشته مثلا میگه این مسئله اصولی در نظر صحابه یا تابعین یا فوقهای اولیه به طرح اصولی نیامده اما در طرح فقهش آمده در طرح فقهش این که آمده بعدم خود نظر اصولی اهل اهل احناف و ابو مثلا گفتن اصلاح جانی نیست یا اصلاح هست یا مثلا فرض کنید سلاست قروه که در آیه مبارکه در باب عبده آمده مثلا ممکن است ببینید یه فقیلی بگه این سلاس قرو اگر طلاق زن در حال تو رو باشه سلاس ادهار در حال حیز باشه سلاست اهیت خوده قسم کنید میگه معنای کلمه با حالات فرم میکنه خب این رو ما وقتی بخواییم این فتواست دیگه همه این فتبار بیاریم تو اصول جواز استعمال لفظ مشتر در اکثر از معنی این قائل به استعمال اکثر از معنی این که میگه گاهی به این معنی بکنی به دو معنی هست غور به معنای سلاس قطعه یا سلاس است هر دو معنا میاد گاهی چون اونا طلاق در حال حیز رو جایز میدنسن اگه طلاق زن در حال حیز بود خوب دقیق بکنی به اصطلاح ادش صحیحه اگه در حال توه بود ادش سه توحه. این درسته اما این دروس فقهی فقيه اما اینو وقتی میخوان تو اصول تفسیر گفتن گفتن این آقا قائل هست که لفظ نزد لفظ مشترک در اکثر از معنا میشه معنا استعمال بشه معناش همینه در اکثر از معنا میشه استعمال بشه خوب دقت بفرمایید اینا یک مسائلی است که میگم چون اینجا متنازع نشودن ما در تا حدود قرنه دوم غالبا اگر مسائل خسوری رو بخواییم نسبت بدیم در ضمن فر افرقیه اخی این یک نتیجه باز بسیار بسیار بسیار مهم داره چون نیدم تا حالا از اصحاب و اون که اگر در یک فر که مخصوصا بین فوقاهای پسون قرم اول و دوم بوم شده و با مراجعه دقیق و اقوالشون کاملا واضحه مثلا رفتن رو استسحاب لیکن استثاب اون استثاب در روایت ما نمیده استثاب در شباط حکمی جانی اما اون فرع فقهی آمده. الان فقه های ما اصلا تو بحث استثاب اون فرع فقهی نیوردن. روایتشم نیوردن. اصلا تو بحث استثاب روایت دیگه رفته. مثلا همین مثال زن بعد از انقطاع در هده از فقه های سونیان کنن هرام استثاب جاری میکنن. هده هم که استثاب جاری میکنن به اساس برای برمیگرد. ا یعنی در اون زمان در قبل دوم سال 120 اگر به شما در مدینه در کوفه در بسه در غوزه های علمیه می گفتید آقا مثلا عقیده اینه که یه رو مبتی زن بعد از این قطع ایشون گفتن ایشون قالب استثاب چرا؟ چون مسئله روایت نداشت دوران ابو ها بود دقیق میکنی و این نقطه اینه ما لاقل پنشیش روایت داریم که یه جوز اومدی ما خودخونه اما عصاب ما تو بحث اساس ها به این روایت همسف نگرد. هیچ کدوم در نظر با اون جبر فقیر یعنی درو... چرا چون عصاب ما اینو حکم موردی گرفتن، تعبد گرفتن از ائمه علیهم السلام که اجوز واسه. حالا بعضی‌ها با قسل موزه و بعضی‌ها بدون قسل موزه. اینو تعبد گرفتن. اما شما وقتی جنب فعلی و این جنبی رو فنان خدمت خدمتون اسلام در نظر بگیریم تعبد نمی‌دونستان. های اون زمان تعبد نمی‌دونستان. می‌گفتن هر کسی که گفت یه رون وتیار در شما توفیق پیش وجوب. هر کسی که گفت یه هر دو استصحاب وجوب. نه در خب مشکل اینه که در عبارات اهل اشاره اشاره دراض پیغمبرم نشده. در واقع دوست روایات که با تو این تو عهد ها آمده مثلا از زمان عمیر مرمی نیست عهد هم کاملا واضح رو استثاب <تصفيق> کاملا واضحه. هیچی یک از روایات های ما چه میدونی شما در بین دوازده تا 15 تا روایت حد در اکثر 15 روایت تو افاسه استثاب آوردن اصلا کسی این پنشیش روایت احتمالا نداردن که متعرس اونه این تونجیه که من میزم مگر کلابایی یا. ماشونی متشکرم باشه در صورتی که به نظر ها این روایات خیلی به درد می و این روایات مصلفه نظر اخباری هاست و ما منظورون که استصاب در شواهد حکمی کلی جاری نمیشه ما این بحث کبرویشم کردیم مفصل اشاره که صاحب دین شده بعدو خوازم. الان اینکه به مکان چندی چند دقیقه بیرامون ویزه فرض باشه درگیر بکنید هی این بعد ایشون فرمودن که مسائل اصولی تنقص و اله ایشون پنج قسم مسائل و اصوله رو تخصیم کردن البته من از کم توضیحاتی اینجا در زیل کلام ایشون میدن برای مراجعه ایشون یک توضیحات هم در کلیه البته این واضح نیست که ایشان علم اصول رو که علم اصول پنج قسم کردن اما نه کتاب رو خود ایشون که کتابشون ترمه اصول قدیم نمیشتن مثل کتاب کفایه. خود ایشون که این بحث رو بونده و مخصوصا که قسم اول مایوسر نائلت و بعدا عادتا در علوم و حتی در کتب چون ما یه تنظیم کتب داریم تنظیم علم داریم که ایشون هم بر ما افتوزیه نردن تنظیم علم و تنظیم کتاب و... کتاب های اصولی چه در علم و کتاب عادتا یه سری مواحث هم برنا مقدمات هست ایشون متاسفانه متعرض نشوند آخر بحث اول بعد. هر سرین مثلا در کتاب کفایت حالا کتاب درسی حوضا هست مثلا چا... سیزده تا مقدمه داره مقدمه که داره سیزده هست از این سیزده تا اول شاجه به مسئله موضوع کل متحد و یا حس و فیان حوارز ازدادی یو بعض حوارز ازدادی حرفا با تقسیم علومه دومش دیگه وضعه بعد معنی حرفی و مشتب و مشترک و اسر. که تماما در علم مباحث الفاظ 13 مقدمه ایشون یکیش خارج بقیهش یک مقدم می‌بینم در اسناد داره که استعمال چیزی فلان اون یکیشی که خارج به الا حدود 10 11 تا 12 مقدمش مربوط به مقدمات وضعه آیا اصلا درسته که انسان مقدمه یک علم رو اینجوری قرار بده مثلا مقدمه علم اصول رو به مقدمات وضع قرار بده در اقسام معنای حسی و فلان و استفاده مشترک دقیق کردیم ایشون یک تقسیمی کردن برای مباحث اصولی این تقسیم کار خوبیه است کردن که دارن بعد از اینجا اصول شروع شد به طور کلی به طور کلی یه های کلی بین آممه شروع شد بعدم هی این تقسیم جا جا شد این در تیه این هزار و دیویست خورده ای سال هزار دیویست سال که دیگر اصلا تدوینه انصافا در تدوین مسائل اصولی خیلی جالب جایی انجام گرفته و خیلی هم خوبه حالا من یک فدیال ایشون مطرح شده شاید به این بیزودی هم با دعوته تقسیم الموسیله هستی یه مقدار اینجا راجع به این مطلب صحبت می‌کنیم به هر حال البته ما نمیدونیم ایشون پنج قسمتی که پشت سرهم هم آورده ناظر به که به همین ترتیب قرار بده بحث اصول رو نمیدونیم. بسم اول رو ایشون تعبیر کردن اینجوری ما یوسیل انا ایلال حکم شرعی به قطع الوجدانی اونچه که قطع به حکم شرعی پیدا میکنیم کل بحث عن الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتی ایشون بحث ملازمه رو یا بعض ملازمات رو ایشون به این عنوان جدا میکنه که یوسیل رو ایلال به حکم شرعی اصلا بحث ملازمه حالا من اول یک توضیحی بده بحث ملازمه بخونو اوالتشون باید توضیح بل بحث عنه ملازمه بین وجود شیء و حرمت زده یا مساله مسئله زده بسرا. بل بحث بله. امکان اجتماع موجوب و حرمه و عدم اجتماع ایشون در ملازمه در حقیقت سه بحث رو اینجا آورده. مسئله مقدمه و مساله زد و اجتماع مم. لیکن در خود مبارسه اصول مبحث اینکه آیا نه مستلزم فساد هست نه اونشون اونجا هم داره اینجا ایشون نهر نگردن اینجا نهردن دیگاه چون نهردن خیلی پاپیچیشون نمیشون در اونجا پاپیت شدیم که این مسئله ملازمه در باب چیز در باب فساد فساد نه، محل اشکالات چون ایشون نهردن ما هم متعرضیشون نمیشون به معنی اند وجود ما حلی از سل زمان عدم املا فه این نحاضه المواهز علا تقدیر تمامیت الملازمه تو جبال قرد به الحکم شرعی زمان صغرا علیه ها و تو به بحث عن المد... مدالیم تارتن لذا به این بحث بحث مدلوله ببینید یعنی در این بحث وجوب مقدمه ناظر به لحظ نیست که تو بحث مثلا اوامر بیانی ناظر نیست که اون اصلا به سیغه افعل باشه تا مقدمش واجب باشه به سیغه فرسون مثلا یا ایلو به سیغه فعل مزارب به سیغه مثلا فعل ماضی اونا نه اصلا کاری نداره این بحث به تعبیریشون سر مدلوله کاری به لفظ نداره این کار به این داره که اگر یه جایی وجوب آمد مقدمات و اون وجوب هم واجبه کار نداره ما بر این وجود اصلا دلیل بر این وجود کتاب باشه سنت باشه عقل باشه اجماع باشه دلیل لفظی باشه لغوی باشه هر چی باشه دلیل وجودش مثلا احکام اولیه الهی باشه ثانویه باشه احکام حکومتی باشه ولاهی باشه هر چی باشه اصلا به این کار نذارید به خاطر بودید و تا راتن انل استلزامات عقلیه البته چون تعبیر استلزامات عقلیه بودن وقتی اصطلاحاً استلزامات عقلیه به اصطلاح ناقصه بشینگن یعنی کامله نیست مستلزامات عقلیه هم دو جوره مرادشون در اینجا مستلزامات عقلیه شرعیه است استلزامات عقلیه اگه تمام مقدماتش عقلی باشون رو عقلی اینجا ها استلزامات شرعیه چون است. یک مقدمه شرعی است اینکه فرانشه واجبه یک مقدمه شرعی هست وها دهیل مسائل فی مباحث ال اگرچه اصولی در مباحث الفاظ البته مراد ایشون از اصولیون چون ایشون sagen واضحه که کتب اصول و ملزنه در مباحث الفاظ برده آشنایی علمای حوزه های ما غالبا اول با معالم است و قوانین بعداً بعد نگاهم خصوص بله در این کتب در همه این کتب توی مباحث الفاظ آمده الا انها لیست منها تو این کتاب معادل که اولی کتاب اصولی حوزه ماست موابز الفاظ آمده الا نه ها لیسند نه ها ازل بحث های نمایی الواز به نفس الاحکام به مالیه لا به مالیه مذلول دل ادله لحظیه فلا وکل ها به موابز الفاظ ایشون هر چند تا نکته در قابل مری ای ای که اینکه اصول بحث ملازمات رو ما جدا بکنیم این در یک بحث در اصول قرار داره به لحاظ سابقه این کار من چون وقت بودش یاله دو بهره میگه از دو تا علاوه این کار استاد ایشو مرحوم هاشم‌سن این کار کرده که این اصول مظفر استخراج و تعبیه ایجاد کرده و بعضی ملاحظات این کار با مرحوم آیه ابت... ابت... ابت... ابتکار مرحوم آشانس اصفهانی یعنی نظر مرحوم آیه هاشم‌سن اصفهانی هم بی این بود که ما اینو از تو مباحث الفاظ در بیاریم هدف این بود چون تونس معالم و اینها تو مباحث الفاظ بود و من سابقا یک توضیحاتی ارز کردیم اولا اینکه ایشون میفهمن جزید مباحث الفاظ درسته در کتب اصولی ما و در ادهی از کتب اصولی اهل سنت تو مباحث الفاظ یه این روز ندرستیم توضیح شد. اما کرارا ارز کردیم ادهی از کتب اصولی زیدی هم دارن حتی و سنی ها ادهی از این کتب یه بحث مستقلی راجع به خطابات و اعتبارات قانونی و تکلیف و حقیقت تکلیف یه بحث اونجوری هم دارن غیر از بحث الفاظ بحث تکلیف و افثام تکلیف و خطابات به اصطلاف ما میگیم خطابات قانونیشون تقلیف در اونجا اده این بحث اونجا آوردن همین بحثی که ایشون میگه اما نه به کاری که آقای خویی فرموندن طبعاً لستادشانش موسیقی این رو یک بحث قرار ده. نه این رو باز دیر مجموعه یک بحث کبروی گرفتن که ما اصولا یک سلطل ارحاظ داشته باشیم حکم شرعی چیه حکم قانونی چیه حکم شرعی چیه طبیعت این حکم چیه و لوازم و حکم چیه ملازماتو حکم چیه بعد اصولا بگی که ترابط احکام با هم چیه مثلا وجوب با حرمت چه ترابطی داره در قطعه بحث و این کاری که ایشون فرموده طبعاً در استاد شما, شما فقط هدفشون این بوده این بحث و از تو الفاظ در بیاره در اونگردن یه بحث مستقل بسته قبل از اینکه ایشون بخواد این کارو بکنه بکنن صدها سال قبل ها قرنه ها قرنه بوده <تصفح> که مراجعه نکرده این کار در کتاب اهل سنت شده نه به عنوان این کار تنها یه بحث دیگر رو مطرح کردن حقیقت اعتبار قانونی چیه؟ اصلا وجود حقیقتش چیه؟ بسیط مرکبه؟ این اعتبارات واقعی چه ترابطی با هم دارن؟ چه نسبتی با هم دارن؟ درسته؟ پس بحث های که به طور کلی آوردن یکیش اینه یکیش اینه پس ماسنه اول استاد در حد این که خیال کردن این بحث لحظی نیست خیلی خب بسیار خب بحث لحظی نیست. این حل مشکل که نشود این بحث باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه جایگاه مناسب خود این لفظ این نیست که من به شما عرض کردم ما باید بحث های کلی راجی به اعتبارات قانونی داشته باشیم این در زیر مجموعه اون بحث قرار میگیره تلازم بین اعتبارات تراوط بین اعتبارات یک بحث تلازم یک بحث تآونده بحث ذات تآونده چه تلازمی بین ارتباط قانونی هست چه تعانودی بین تو تعانود میشه امر میشه مختصی نایزه درک فرمودید پس بنابراین این این مطلبی که ایشون فرمودن قدس الله و تبعاً استادشون این مطلب علمی نیست و این مطلب قبلا چهار چاره برش شده و در یک ردیف علمی مناسب خودش یه جایگاهه خودشو پیش دادن درک و اما این که چرا در مباحث الفاظ اردن اده دیگر یعنی از اصولی اینشالله فردا یه و خیلی از داخت شما گرفتیم. چون خیلی دیر شروع کرده شده فردا اینشالله ساله. و سال الله و سال الله و سال الله و محمد داره. با چیان قادر فرید؟ در مساله فرید حکم رو